کمبود، استراب، بیگانگی، قربت، انتظار، غم و مجهول ماندن هرچه جهان آگاهتر و خداگاهتر می شدم، سنگین تر می هرچه به برخورداری و آسودگی بیشتر می رسیدم، آزاردهنده تر می شدند. چه دشوار است به پایان همه راه های این جهانی رسیدن. نیاز پس از بی ها و آتش پس از سیرابی ها و جوع پس از سیریها و استراب و اندوه پس از آسایش و لذت سخت است. آنچه همواره روح‌های بزرگ و شجاع را به فریاد آورده است. آنچه هفت هزار سال پیش گیلگمش قهرمان نامی سومر را آواره بیابانها کرد، بودا را از کاخ سلطنت، به آوارگی و ترک خانمان کشند و همچون کرگدن تنها بر روی زمین و همچون قطری پاک شبنم بر نیلوفر در انتظار ماند لوکرس را به ناله آورد کامورا و سارت را به هراس و اسیان و مترلینگ را به جنون کشند همینگوی را کشد چه میگویم؟ علی را به ناله درآورد. آورد محرومیت ها نام و نان و هوس را هدف حیات می‌کند به زندگی کردن معنی می‌دهد و آدمی را به جستجوی آنچه هست و ندارند و آنگاه که روح به این حرس می رسد ناگهان صحرای هراس انگیز و مجهول بیهودگی در برابر پدیدار می‌گردد جهان معنایش را از دست می‌دهد زندگی بار سنگینی میشود بر دوش کسی که نمیداند آن را باید کجا ببرد و انسان بودنی میشود پوچ بیسمر بی, سمر بی برای هیچ زیستن مجموعه اعمال می شود که هیچ کدامش توجیح پذیر نیست تحمل آن برای روحی که دیگر بازگشتش به آرامش نباتی و جهالت رام جانوری و حیات سعادتمند و سالم و کور طبیعی غیر ممکن است، سخت در داور است. در پیوند به حماقت می رسیدم و در آزادی به تنهایی. به نیروی هنرها میکوشیدم تا به کائنات و به آدمها که سخت از هر دو دور افتاده بودم و با هر دو بیگانه نزدیک شدم، آشنا شوم. هنر سالها مرا فریب داد و چه فریب گرم و نوازشگری. خود را بیان میکردم و دیگران مرا میفهمیدند و کسی که دیگران احساسش کنند تنها نیست. طبیعت را آگاهی و آشنایی میدادم، روح خیش را در کالبد اشیا می دمیدم با آنها حرف می زدم. حرف آنها را میشنیدم شنیدم هرچه میخواستم و نبود می ساختم هر گونه می خواستم و نبود می انگاشدم. و کسی که جهانش او را بشناسد قریب نیست کسی که پاسخ خیش را بشنود آرام است اما مگر تا کی دل را می توان پریب داد تا چند میتوان انگاشت بینایی هنر را نیز میکشد بیداری همه خواب های شیرین را در اعماق تاریک شب گم میکند و چه بی تسلیت مردی است که چشمانش از دور سراب را باز میشناسد محبوب من امروز به سراغ من آمد و در حالی که چهره تند و چشمان آمرانش که همیشه حالتی مهاجم داشت معصومیتی حاکی از فداکاری و ایثار گرفته بود گفت دوست من تو را سوگند میدهم که نیاز من به داشتن تو که حیات من بدان بسته است تو را در بند من نیارد اگر میخواهی برو اگر می‌خواهی بمان آنچنان که می‌خواهی باش بر روی این زمین در راه گذر توند بادهای آوارگی تنها رشته ای که مرا به جایی بسته بود گسست اگر گفته بودی بمان میدانستم که باید بمانم و اگر گفته بودی برو میدانستم که باید بروم اما اکنون اگر بمانم نمیدانم که چرا ماندهام اگر بروم نمیدانم که چرا رفتهام؟ چگونه نینددیشید ای که یک انسان یا باید بماند یا برود و من اکنون در میان این دو نقیز بیچارم. کسی که عشق رهایش میکند، بودنی است که نمیداند چگونه باید باشد و چه دردی است بلا تکلیفی میان وجود و عدم جوهری که هویت خویش را نیافته است جوهر رنج است کسی که با خود نیز نیست چه تنهایی سختی وحشیترین قرورهای پولادین و طوفانیترین اسیانهای آتشین در اوج سعودش در آخرین نقطه جستنش فبواره است که پس از گریختن از تنگنای تاریک جبر در جستجوی آرام یافتن به دعوت جازبهی سرفرود می آورد تا خود را در دامان خیشاوندش محو کند و رها گشته از بند هر بیگانگی از حیرت دردناک رهایی در پیوند خیشاوندی رها گردد. دیالکتیک سوردل، فانون و امسزر در چارچوب تنگ نژاد و در رابطه متناقض سیاه و سفید استعمارگر و استعمار زده میگذرد اما من آن را در انسان می بینم، در رابطه آنچه هست و آنچه باید باشد. آنها میگویند هنگامی که اروپایی با فرهنگ و همه های انسانی خیش فرهنگ و همه های انسانی سیاه را میکوبد و بر آن میتازد سیاه که مورد حمله واقع شده است از مهاجم میگریزد تا خود را از تیر تیررس او کنار برد اما این خودپایی به صورت نفع خود و حل در اروپایی صورت میگیرد گریز از خیش به دامن مهاجم برای مسون ماندن از هجوم، انسان کودکی است که از خشم مادر به دامن مادر پناه می جوید. یک نژاد برتر، یک انسان مافق، یک فرهنگ ماورایی و مجموعه از ارزشها و زیبایی های متعالی، یک زندگی بهشتی و یک جهان اهورایی، یک بودن بالاتر، همواره ما و جهان ما و فرهنگ و زیبایی ها و ارزش ها و حیات و حتی بودن ما را از آن نمیدانم کجا بمباران می کند. آن نمیدانم کی که مخاطب من نه مخاطب گفتن من که مخاطب بودن من است همواره مرا با ضربه های بیامان میکود و من، ما، انسان تاریخ همواره با نفی واقعیت خیش در تلاش بیتابانه با مشتاق رفتن، نمودن و شدن آن حقیقت است همه مذهبها و فلسفه‌ها و هنرها و ارفانها و همه اتشهای سیراب نشدنی و آرزوهای دست نایافتنی و سرمنزل مقصود نارسیدنی و کمبود همیشگی و خلاه آزار دهنده روحهای بزرگ و بیغراریهای دلهای فراتر و دغدغه مجهول درونهای شگفت و اشتیاقهای بی آرام و عشقهای بی معشوق و نیاز عبادت در جانهای بی معبود و اسیان و دلهره و هراس و تراژدی غمانگیز انسان که آنچه هست نباید باشد و آنچه باید باشد نیست و همه حرفها همین است و همه دردها همین جاست درد روح این است و این است که انسان شقایقی است که با داغ زاده است رنجور از بند رهایی در قربت زمین تنها و قمگین در خلوت جمعیت خلق میگردم و بریده از هر پیوند به بیپناهی افتادم و نسیمی که دمادم در من میوزد همه آشیانه ها را از بازوی شاخه‌ها ها به زیرفکنده است و زلزله‌ای که در من افتاده است همه سخف ها را بر روی خاک فرو ریخته است همچون گرگی تنها در سینه صحرای سیاه و خاموش زمستان زده با قربت خیشی استاده و در دور دست شب سواد شهر پیداست و ستونهای دودها و بخار نفسها و حیاهوی آمد و شدهای بیحاصل و درهای خانه ها بسته و شیشه پنجرها بخار گرفته و در پس آن گرماهای مصنوعی و اشرتهای دروغی و عشقهای قریزی و تنگ در آغوش هم خفته، گرم خیالات و آرزوها و ها و حسدها و افتخارها و شادیهای همه حقیر، همه آلوده، همه زشت و ماه در اوج یکتایی بلند پرشکوهش، بر این شهر دیوارهای سیاه و کوچه های پیچ که به هیچ جا لبخندی سرد دارد کوه ها و دریا و چهره ها و درخت ها و رنگ ها همه از برابرم محو شدهاند و در پیش رویم دشت بیرنگ و یک دست ساکتی گسترده است که از هر سو در عدم گم می شود از بالای سرم سرپوش آسمان را برداشتند و فضای بیکرانه نیستی نمودار شده است و من خود را همچون سایه موهومی مییابم که در صحرا افتاده است و چون روح آواره کویر که بیقرار و خشمگین خاک بر افلاک میفشاند و در اندام تک درختان خشک و نومید میپیچد و گم را میجوید و نمییابد ذات خیش را میجویم و نمییابم من سایه اویم او کجاست در اعماق زمین در آغوش کوه ها در قلب دریاها، در پس ابرها، در آن سوی افق ها کجا باغها و آبادی ها همه را رفتم شرق و غرب عالم را همه گشتم از اقصای تاریخ میایم از شاعران حکیمان عارفان و پیامبران همه سراغ او را گرفتم این راه ها همه به بی است، این سرمنزل ها همه منزلی بر سر راه است. شگفت ها. هرچه های زمین در برابرم ساکت تر می شود، زمزمه ناشناسی از دور های درونم نزدیک تر می هرچه جهان بیشتر رنگ می بازد، سرزمین ناشناخته از دور پدیدار تر می گردد. و هرچه رنگ ها می میرند یک نمیدانم چی در من رنگ می گیرد و هرچه از این شهر دورتر می سواد ناشناخته آبادی از دور آشکارتر می گردد و هرچه با زندگی بیگانه تر می حیاتی در من آشناتر می روید. و با این چهره ها هرچه ناشناستر میگردم گردم، چهره ای در آینه فطرت من نمودارتر، تر، خیشاوند تر و قربت وطن را و بیگانگی خیشاوندی را و اتش در کنار این آبهای ناگوار سرچشمه زلال و معنوس دیگری را فرایاد من میآورد. این پیامبران چه میگویند؟ از کجا سخن میگویند؟ به کجا می این حکیمان به چه میاندیشند؟ به کجا میاندیشند؟ شاعران شوق کجا را دارند؟ شعر سخن گفتن کیست؟ سخن گفتن از چیست؟ نقاشان میکوشند تا چه بیافرینند؟ مگر رنگها و طرحهای این جهان دل زیبا پرستشان را بس نیست؟ پیکر را چه سرمشقی به خلق آنچه نمیابند وامی دارد؟ این همه آوازها و قیل و قالها و اسوات در زمین و آسمان و شهرها و خانه ها کفایت نمی کند. از دل سیمهای یک گیتار، از سرنگشتان نرم و اعجازگر یک پیانیست، از حلقوم افسونساز یک نی، این آوازهای آشناس چیست؟ آن همه اسوات طبیعت که همواره می اندیشه ما را جز تا اشیا نمیبرد. جز اندوخته های حافظه را در هم نمی آشوبد و این آواها از چیست که خیال را از مرز هستی فراتر می‌کشاند و مرزهای عالم را دیوارهای وجود را و قالب‌های همیشگی من را فرو میریزد در زیر این آسمان این انتظار چیست که روح را بیتاب به خیش کرده است در این تاریخ این آتش چیست که هرگز در روح‌های سیراب فرو نمی‌نشیند؟ روح‌های مهاجر چرا آرام نمی‌گیرند؟ عشق و اسیان دلهای بزرگ را چرا رها نمی‌کند؟ بانگ آب خاطره دور کدام زندگی، کدام سرزمین و کدام آبادی را در ما بیدار می‌کند؟ آری، اندک-اندک چیزی به یادم می‌آید. ناگهان این دیوار گلینی که تا قلب آسمانها در برابرم برپا ایستاده بود و من از ورای آن هموار زمزمه شگفت و قیبی دعوتی آشنا را می شنیدم که هرچرا در این سوی دیوار می در پیش چشمم زشت و دور و بیگانه می نمود فرو ریخت. اما من از دیدن آن دنیا به یاد این آخرت افتادم و از دیدار آن آدم ها و زندگی کردنشان این ایام و این سر و سامان را به یاد آوردم این زشتی ها، آن زیبایی ها را و این نقص آن کمال ها را و این نسبی ها و اعتباری ها و عرض ها، آن مطلق ها و اصالت ها و جوهرها را و این قربت وطن را و این بیگانه ها آن خیشاوند راستینم را در خاطرم بیدار کرد. نه چه میگویم برعکس اگر یاد آن ایام و آن سر و سامان و آن وطن و آن جهان برین کامل مطلق بهشتی در عمق فطرتم نبود اگر مدینه فاضله را پیش از هر شناختی نمیشناختم و اگر تصویر مبهم سیمای آشنای او در سرشت فراموش جانم نقش نبود و از کجا میدانستم که اینجا زشته است نسبی است مرگالود و بیمار و غربت و بیگانگی و پر از کم بود آری این است من هم دوچار منطق وارونه متفکران فیلسوف معاب مشهور شده بودم که خیال میکنند بیماری است که سلامت را و زشتی و نقص است که مفهوم زیبایی و کمال را در ما پدید میآورد. درست است که هر شیع یا هر امری نقیز خود را طرح می کند. اما کدام طرف از دو متناقض؟ وجود همیشه عدم را به یاد می آورد، نه برعکس. اگر مفهوم سلامت را نمی شناختیم، هرگز بیماری را اگر هم همه بیمار می بودند نمی شناختیم. اگر در هستی روشنایی مطلقاً وجود نداشت، هیچ جا تاریک نبود. حتی معنای خلود بوده است که مرگ را پدید آورده است مطلق، کمال، زیبایی و قدس در ذات احساس ما در جوهر فهمیدن و اندیشیدن ما هست که میبینیم در هستی نیست دلهای بزرگ و احساسهای بلند اشخهای زیبا و پرشکوه میآفرینند اشخهایی که جان دادن در کنارش آرزویی شورنگیز است اما کدام معشوقی مخاطب راستین چنین عشقی تواند بود؟ این عشقها همواره در فضای مهگون و جادویی اسطوره و, و افسانه سرگردانند و در دل کلمات شعر و در حلقوم ناله های موسیقی و در روح ناپیدای هنرها و یا در خلوت درد مند سکوت و حسرت و خیال و تنهایی چشم به راه آمدن کسی که می‌دانند نمی‌آید. راستی چرا عشقها راستند و معشوقها دروغ وانگهی عشق مگر نبی تابی شورانگیز دلهاست در جستجوی گم کرده خیش پیداست که من از عشقهای بزرگ سخن می‌گویم نه عشقهای شدید از نیازی که زاده بی است. نه احتیاجی که فقر بی کسی، حراس مجهول ماندن، نه درد محروم بودن عشقی که خبر میدهد روح را از اشتغالهای کور روزمره آب و نان و نام و حقیری که تنها ارزششان آن است که همه عرج می و فهمیدن را تنگ و تاریک میکنند، به در می و از لذتهای رنگارنگ نشخاری و تلاشهای مرچبار تکراری، که زندگی کردن و به سربردن را میسازند معاف میکند و به بودن که در جستجوی های گونه ای که بر خاک ریخته تکه تکه گشته است وحدت میبخشد و در میان این گلهٔ انبوهی که رام و آرام میچرند و با نظم یک نواخت و ابدی بر پشت زمین روانند ناگهان همچون ساعقه بر جان یکی میزند و نگهش میدارد و بر سرش فریاد میزند که تو جهان عمر اسیان میکند و همچون جند پیل تناور بر گونه نیلوفر که چون دلش هوای خلوتی در گوشه جنگل میکند از گله کناره میگیرد از راهی که روندگان آن بسیارند باز میگردد گله را رها میکند و به راهی بینشانه که همچون راه مرغان آسمان یافتنش دشوار است روی میکند و ناگهان در پسوی تنگ و تاریک درونش که جز حفره امعا و احشا نبود جهانی پرآفتاب پدیدار می شود و در آن خداوند را مینگد تکیه زده بر بالای بلند عرش کبریاییش که نگاهش همچون آذخش میدرخشد و لبانش لبخند پیروزی همچون نخستین سپید دم خلقت می و سرود نرم و معطر سفر آفرینش تورات را باخیش زمزمه میکند و تنین آن همچون نغمه ارگ که سرود زیبای گریگواری را می نوازد در زیر رباغ بلند و بلورین معبد دل دور میزند و هوای روح را نوازش می کند. و آدمی تماشاگر مبهود و حیرت زده خیشتن می شود هستی نو و زمین بیغبار خاکی و خورشید نودمیده و تلعلوی زرین و پرجلا و سقف آسمان تازه برفراشته و دریاها از زلالترین عشقهای شوق فرشتگان معصوم حریم افاف ملکوت خداوند لبریز و نکمترین لکه مرگی، خراش ویرانی، سایش فرسایشی، چین اخمی، کدورت قمی، التحاب نیازی، استراب از دست دادنی، حسرت نداشتنی، رنج نبایستنی، پلیدی مسلحتی، آلودگی فهمیدنی، دیواری، ضرورتی، سایهی، قیدی، قانونی، نظمی بر چهره پاک و صمیمی و زیبایش ننشسته، آسمان تماشاگه خداوند بر زمین پرتو لبخند مهربان خدا همچون نور معصوم محتاب و فضا از نخستین دم او در آرزوی فرزندی خیشاوندی آشنای عاشقی پر از هوی هوی هوای خداوند در هوای همانندش زمین گسترده و آسمان برف و قندیل مهر و شب چراغ ماه بر سقف آلم ها و دریاها لبریز و کوه هایی استاده و باد ها در پس کوه ها منتظر فرمان و ستارگان بر سینه افلاک میخکوب و ابرها ها جا, جا در آسمان چشم به راه باد هستی همه تن چشم چشم در لبهای خداوند دوخته هستی همه تن گوش گوش به فرمان خداوند بسته ناگهان صدای تندری در اندام عالم میترکد و لرزه بر کائنات میافتاد. زمین و آسمان و هرچه هست به حرکت میآیند. چه شده است؟ چه شگفت دنیایی است. زمستان و سکوت پایان میگیرد و دو پار ابر از دو سوی آسمان به راه میافتند شلاق ناپیدای نسیمی شوغ زده آن دو را به روی هم میراند. یکی تیره با گرفته با ابوس بر چهرهش اخمی تند و در سینه‌اش صاعقه ها و تندرها و های دیوانه با مهیبه به بند کشیده بی‌قرار انفجار و دیگری همچون کبوتری سپید به لطافت خیال دخترک معصومی در بستر ناز نیم شبان که سیمای تابناک و نیرومند پدر را که فردا از سفر باز خواهد گشت در رویای شیرین یک نیم شب تابستان می‌پرورد سبکبار همچون روح پارسایی لطیف همچون روح مهربانی پاک همچون قلب روستایی سپید همچون سول سمیمی همچون آشتی سبک همچون نفس کشیدنی پس از گریستن روشن همچون دیداری پس از بازگشت و زیبا زیبا همچنان پار ابر سپید گوشه آسمان در نخستین بامداد شسته خلقت میبینم که دو پار ابر آرام و خوشاهنگ به سراغ هم آمدند، ناگهان برقی زد و قهقه دیداری و دونیمه سیب سقراتی یک سیب شد و باریدن گرفت. شگفتا، اینجا چه خبر است؟ چه خبرهاست؟ هر لحظه خطی تازه و هر دمرنگی تازه تر، خود را میبینم که همچون غریبی که به سرزمین وطنش باز میگردد. لرزان از شوق و شگفتی پیش میروم و زمین و آسمان این دیار پر از آفتاب را که از جوهر روح من است و به رنگ احساس من با لذتی که همه ذرات وجودم را مست میکند در آغوش جانم میفشورم با تمام اتشم هوای پاک و مهربانش را مینوشم با تمام اشتیاقم همه رنگ های این دیار را به نگاه های حریسم می بلم. خاک نرم و عزیزش را که به لطافت است دست میکشم همچون همچن ای که در رویش مداوم نور رنگ بازد، دشتها و دریاهای شگفت قیبی پیاپی می رسند و مرا در دامن خود فرو می کشند و من هر بار در سینه چشماندازی تازه می میرم و جان می گیرم و مدام، در رنج و شوق مرگ و حیات بی امان خیشم حالتی دارم که در وهم نمی گنجد هر لحظه این جهان تابناکتر و بیکرانه تر مینماید و هر لحظه دنیا دورتر و حقیرتر چه رؤیای پرشکوه و چه حقیقت پرجلالی است همه ذرات این عالم با ذرات وجود من آشنایند نمیدانم چگونه چگونم. حراس و شک و شگفتی و لذت و استراب و نیاز و کنجکاوی و انس و حیرت و انتظار و اشتیاق و بسیار حالتهای قریبی که دلهای نفرین شدگان زمین و زندانیان آسوده زمانه نمیشناسند در من به هم آمیختند و مرا در سینه گدازان این آفتاب فرو میبرند و من گرم لذتی سرشار، خود را تسلیم این موج ناپیدایی کردم که شتابان به دور دست این دریا میرود و مرا نیز بیخیش میبرد و چه آزار دهنده و تساوره است دست نوازش یا سرزنشی صدای دوست یا دشمنی که مرا لحظه ای از این معراجهای های و سیر و سفرهای ماورایی به آن دنیای زشت و حقیر میخواانند آنجا که گویی قَرن هاست، فرسنگ هاست از آن دور شدم. گویی از یاد بردم جز خاطره شوم و افنی از آن هیچ به یاد ندارم. دنیایی همه دیوار و سقف و نظم و حساب و کسب و کینه و حسد و حسد و همه تنگ و همه تاریک، همه نسبی، مصلحتی موقتی، با هواهای افن و گندزار آبهای ناگوارش و آن خرمقدس های احمقش و آن روشن فکران خنکش و نصیحتگران بیمزه و دانشمندان اطفاریش و دینها و هنرها و احساسها و ارزش ها و خوبی ها و رنگ و زیبایی و انسانیت های بازاریش و همه آن زمین و آسمان کوچک پوک بیهوده و خفخانا میزش و آه نمی من دیدار شما را ای همه رنگ ها و تصویر ها و چهره ها و عشق ها و ایمان های زشت بیگانه پوچ نمیتوانم تحمل کنم. چقدر از شماها دورم. چه رنجاور است تجدید خاطرهایی که از شما دارم. چه آزادی آسودهی در خود احساس می کنم هرگاه که می بینم فراموشتان کردم. هرگز یادم نکنید. آسودگی و آزادی آرام و پاکی است در دوری از شما دیگر نزدیکم میایید من آنه خشکم بر لبهای ناپیدایی که قصه فراغ را مدام در من میدمد و خاطره ای از روزگار وصل خیش از عمق دور و مجهول درون خاموشم آشنا و شورانگیز سر می‌دارد و جان سرد و غمگینم را گرم و شاد در آغوش می‌فشرد. هر لحظه پیکی از غیب می‌رسد و پیامی از دوست میرساند و من طفلی از خواب دوشین برخواسته در پیشگاه صبحی که پیوسته در برابرم میروید ایستادهام و در رهگذر نسیمی که نرم نرم از دریایی دور میوزد و حریر دامن پر از بشارتهای جانبخشش را بر من میزند سر و روی و گریبان خیش را به تسلیم نگاه داشتم و همچون اتشی در زیر باران میکوشم تا آخرین قطرش را بنوشم بمکم چه آسوده و خوب خود را در خیش احساس میکنم در قالب بودن خیش درست جا افتادن. نه مرواریدی در بند گردن این و آن بودن، نه از گردن بند گسستهی رها افتادن، در آغوش صدف خیش خزیدن شدم.